الحمد لله والصلاة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآل طيبين الطاهرين المطهرين من عات داءنا تعالى عند جميع المشرفين قبل از این که بارد تکمیل شرام بشین دوید مطلب یه عرض شد راجی در فرق بین بحث تا آغون علیل یا اعانی علیل از و مقدمه حرام عرض کردم که در بحث اعانی بر از که مسئله فیخی قراردن چونه میگه ماده است در بحث مقدمه واجه ماده معیینی که مثالی هم حرض کردن تا راه تو بحث رید اینو من یادم رفت که بدم مرال از ای که در باب تعاون هست هم ماده اونه تعاون و عرض ذره تقوی ولا تعاون و عرض اسم و عدوان یعنی به عبارت اخرى در بحث تعاون ما عنوان داریم که عنوان ما عون بودنیم انسان عون باشه برای گناه لا تعاون و اسم و عدوان یعنی انسان باید اوم نباشه این اومیت رو برداره اوم یعنی کمک مساعده به عبارت اون در با به تصور این میشه یک شخصی این شخص داره گناهی رو انجام میده یا گناهی رو مرتکب میشه انسان کمکی باشه برای ارتکاب اون گناه این رو اصطلاحا اومیه مباشر خیلی از مباشر. مباشر گناه که سیگهیه کسی دیگری داره گناه رو انجام میده شما کمک یعنی لذا عذ کردیم اونی که مهمه در باب اقانه بر اسم باید به فعل انسان صدق بکنه که من اقانه بر اون هستم من اون اعانه. اون ماده رو باید در نظر گرفت پس ماده‌ای داره که ماده اون بوده و کمک برای ایجاد گناه است الله در مقابل بر و تقوا اما در باب مقدمه واجب اونجا که شما عنوان مقدمه نداریم عنوان نداریم مثلا کلمه مقدمه از قدم تقدیم آمده چیزی که انسان جلو میفرسته به اصلاح با قول قدیمی ها تلایه جهش مقدمه تو جهش رو تلایه, تلایه اون گروهی که اول جلو لشکر میاختن تلایه بشین گفتن ما در باب مقدمه واجب که عنوان نداریم این عنوان مقدمه قد قدمه هو، این مقدم کرد این هم احض نشده لذا بحث مقدمه واجب روی بحث عقلی گرفتن چون درش لحظ نیست اینه به طور کلی فوقهای ما مثلا اخیلی خیلی واضح در قدما هم داشتن خودما بیشتر جنبه های پسواش بود متأخرین تحلیلاتشون مثلا ممکن است یک مطلبی هم به لحاظ عقلی باشه همون مطلب هم به لحاظ نقلی و در لسان دلیل هم باشه گفتایی تو فرق میکنه یک مطلب عقلی اگر در لسان دلیل عقل شد فرق میکنه مثل قدرت مغناشون برای این است که قدرت جز شرائط عامه تکلیفه حالا اگر در لسان یک دریدی هم قدرت آمد گفت اگر تو قدرت داگه انجام بده میگن تا قدرت تو لسان درید آمد غیر از قدرت عقلی باز هر چون هر تکلیفی عقلن مشروط به قدرته و لذا آثارتگیهی هم براش بار کردن نه که فقط را بگرم مثلا استظهارا فرق میکنن این عبارت معروفی که الان بزرگان ما دارن از اون دیگران اگر شکل در قدرت بشه اگر قدرت قدرت عقلی باشه احتیاط جانی میشه اگر قدرت قدرت شرعی باشه برای احتیاط میشه این نقطهش همینه درست هم از این مدلت مثلا للا علنات جلبیتان استفایلی سبیاد بنابرای اون تفسیری که دارن آن که استفایت استفایت اون قدرت میگن وقتی قدرت تو لسانه دریع آمن معناش باید با اون قدرت که به حکم عقل میکنه. بللو خوب هر تکلیمی مخصوص به, به قدرت پس یک نکته زائدی رو در نظر گرفته یک قدرت مخصوصی رو در نظر گرفته مثلا در به حج این در نظر گرفته شده که نه اینکه شما قدرت تکلیمی بر رفتن حج ممکن شما پیاده را مثل یک سال خوبی بشه از قم دو سال خوبی بشه نکی قدرت این قدرت تکلیمی باید مثلا وسیله هواپیما یا مسافر ماشین غذا توشه یا حالا برگردین شغلتون از دست ندین یعنی مجموعه قدرتی که در اینجا که قدرت خاصیه نه قدرت منش توانایی عقلی و لذا هم میگن اگر شما شک کردین که آیا قادر هستی یا نه اگر قدرت قدرت عقلی باید انجام بدین تا وقتی که آجز بشین برایت جایی میشه اشتغال درمشون بزن و اما اگر قدرت شرعی بود شخص داریم که قادر هستیم یا نه که حج بریم چون احراز استطاع از بازرت نشده از ساعت البراعتنه حج یاری میشه مثل من ببین مبانی مشروع صورت میمیم خدا ما این مبانی نداریم اون مبانی مشروع ای تو. این تو در باب از حج بریم پس فنابراین دکت بکنیم ما این مخیرم دیگیم مقدمه واجب از قدرت عقلیس عنوان نوزده اما تعاوان برای اسم عنوان داره عنوانش آن عنوان بوده اینه که انسان آون بشه برای گناه کمک بشه برای گناه لذا این زرافت بحث هست که بحث مقدمه واجب رو توی اصول آوردن تعاوان علال اسم ولو ادوان رو توی یه فقه آوردن توی اصول نیونه سرش اینه در بحث مقدمه عنوان خاصی نداره. اگر گفت برو نان بخر مقدمش بازار رخشنه مثلا گفت برو اصلا گوزو بگی تحییه آبه اگر گفت هر رواجب به حساب خودش مقدمات خودش چون مقدمات یک سال نیستن عقل و به حکم عقله ما عنوان رو به فعل خاص نمیدیم چون عنوان رو به فعل خاص نمیدیم اسمشیش بحث اصولی اما اگر شما آمدید حکم رو عنوان خاص بودیم چه که بخش اخو عنوانی که در اینجا هست عنوان تعاون از اختلافی سر از کردم بزرگان اهل سنت اله نه نحاضات اونجای که من میدونم اعانه بر اسم را از همین آیه تعاون در رو و بزرگان ما هم که شروع شد این بحث رو گرفتم تا مثل زمان مثل مرحوم محقی کرکینا دیگه تسریح هم اعانه بر اسم رو از همین آیه گرفتن از متعقیم در اصحاب ما و اولیش من ندارم چیه من هم مروم صاحب جواله من هم استاد آیه خویی من هم مروم آیه روانی اینا گفتن عنوان اعانه از تعاون در نمیاد بلازه اینا قائلن که اعانه بر اسم حرام نیست خلافاً در مشهور خودما اونی که حرامه تعاون بر اسمه نه اعانه بر اسم. و سابقه هم توضیح دادم این چند نفر جمع بشن هر کدام به دیگری کمک کننه یک حرام واحدی انجام بدن مثلا 5 نفر دیگر بشه نفر بخوشن نسته بده. این تا آوانه تا این است که کلون یکون و آونن دل آخر چون میگم باب مناش اینه اما اعانه نه من آن باشم گناه دقیق ترانه تفاقی به و تا آون مشهور اهل سندت و مشهور فقهای ما تا که دیویس سال اخیر اعانه و تا رو یکی گرفتن و هر دارم حرام میدونستن اما اینها، ها آمدن گفتن اعانه برای اسم. در اعانه اسم رو یک نفر انجام میده خوب دقیق رو فرد دیگر در راه انجام دادن اونه اون از اما در تا آون همه با هم جمع میشن به یه گناه رو انجام میدن همون مثل آب جواهی و بعدم مثل اصطاد نه اعتقاد میشین که تا آونه بر اسم حرامه اعانه بر اسم نه البته اصطاد را ادید فقط اعانه بر ظلم رو هم حرام میدونن چون رواست خاص داره خیلی رضایی موقعه که این در اعانه سبب و مباشره آه در اعانه شبیه سبب هم نیش چون سبب ادیتوان بداره در اعانه سبب نیست، در اعانه اونه کمک بشی همین ک یه کسی محقق گناهی را انجام بده، یک قسمتشو به عهده بگیره. مثلا کسی بگه من شاخو به دستش بدم. من در کشتن با شریع نشودم. دقت بکنه. یه دفعه در کشتن اون شخص با او شریع میشن این تا آونه یه دفعه چاقو میدم دست اون شخص، عثوانی هم از هز ناراحته، با یکی دعوا داره، رو میگه میکشه. اینجا اعانه. اینجا تا نیست، اعانه به اصطلاح یعنی چیه خودش رو اون قرار داد. ارز کردن در اون بحث خودش خود. یه نکته فنی ما در محل خودش ارز کردنیسون لطیفه جایزه اکنه شده و آثاری هم داره نیمخوام بگم الان نیمخوام بازه بحث آثار چون افکران این این ها از این کسی که بحث اسلامی داره یه چی دوجه برنامه معروف نوشته دارم تا بسن ترجمه هم, هم به فارسی هم شده هم شده. خب این بولخم خب خیلی زحمت کشه انسان‌ها اینو تا کتاب نگاهی ازش خیلی زحمت اما این نکات زریفی بود که ماها در سخن مفصل میشیم با اون زحماتی که اون کشیده و خیلی هم مستر نگاهی ازه که جای ما این احتمال رو بنده از کنم از کنم در کلمات دیگه‌ای هم نیامده چون آیه عل و توی سوره است که من آخر ما نظرم در قرآن در یکی دو سوره قبل از این عنوان امر محروف و نهی از منکره یه احتمالی ما داریم علاوه بر این در احتمال بعضی شما خیلی خوشایند می‌گه مخالف صحبت همین که اصلا در حقیقت این آیه تعاون تفسیر روشن‌تر از هم امر به چون کلمه امر یه حالت امریت اینو حالت مثلا مبدأ قدرت در اسلام یه دیکتاتوری مثلا واداشن این تعبیر رو خداوند به طور تعبیر ملایم یعنی اون تعبیر نهایی به طریق تفسیر بنده از میگم چون جایی نیدم متأسن احساس بودم طبق این تفسیر ما در حقیقت اون تعبیر نهایی به جای امر معروف به جای امر معروف تعاون بر بر تقواس به جای امر و و به جای نهی از منکر تعاون بر اسم عدوانه این چون آخرین آیه تر حقیقت موضوع رو از عنوان امر معروف برداشته برده یعنی فقط بحث امر معروف نیست انسان باید کمک کنه برای اینکه به اصطلاح بر و این چون آیه جزء آیات به سر آخر قرآنه و در خود قرآن بر در موضوع دیگه تفسیر شده لذا به بر اکتفای لیتا دران تو هلو وجوه کن خوال المشق ولیکن از و, و آمن و آمن بالله و اقام از صحابه تمام اون احکام رو او قبرده آیه دیگه این آیه چون بعد آمده لذا معنی تعاون اینه که جزء و ضائفه. مسلمان ها این است که جامعه اسلامی کمک کنه کمک که اون بر اون برم در آیات مبارکه تفسیر شده تقوا هم در آیات مبارکه چون تقویی که از الفاظ کلیدی قرآنه خیلی روشکار خواستی شده که ابن جایی بحث اینجا نیست روی بر رو کار بشه کمک بشه یعنی به عبارت دیگر بحث فقط امر به معروف نباشه عملا در جامعه سعی بشه که بر رو ایجاد بشه خوب دقت بکنید یعنی بحثتر این نیست که فرض مثلا در رادیو تلویزیون یک نظام اسلامی فرض در رادیو وسوزون بگه مردم نماز بخونین، مردم شیین بخونین، مردم معاملات حلال حرام باشیم معاملات باطل انجام ندین، حالا معامله باطل است این حالا این همه معروفه نه اصلا نظام اسلامی باید یک ای رو ایجاد بکنه که افراد حتی اگر فرضین تغییری نداشن خود به خود اون وظیفه دینیشون انجام بدن، اتفاق بکنه. یه جوری شکل بندی نظام بشه اصلا خود شیطبندی نظام باید یک جوری باشه راه های یک جوری باشه پس اون توی بازار توی بانک یک جوری معاملات تنظیم بشه که اگر شخصی حتی احکام دینیشن برای نبود معاملات ردوی انجام نده نه اینکه که فقط بیان بگنه امروشون موقع معاملات انجام ندید. این آیه موباله که یک درجه بالاتری رو داره تا آون و در برگرد تقوی یعنی باید مسلمان ها کاری بکنن وقتی که از قرآن آیه میاد از قبیله المؤمنون و المؤمنات بعضا بعض اولیا و بعد، که یک نوع ولایت عمومی در این مؤمنین هست اهل سنت و همین آیه خیلی تاکید داره به لذا مسئله بیعت و خلافت که دارن برای خودشون درست کردن ما هم این آیه نظر داریم باشه از به بلایت عدول المؤمنین در جایی که ولایت امام مفرید نباشه برمیگرده دلش عدول المؤمنین این مجموعه رو باید با هم تفسیر کرد و این معنا آیون باره که این میشه باید نظام اسلامی جوری کار بکنه که افراد نا آگاهانه حتی نه فقط آگاهانه لا شعوری هم به آگاهانه نه فقط شعوریان یا به خ... ناخداغاه خود افراد اون نظام اسلامی پیاده بشه تا آبان و عمل و تقویه اصلا وضع جامعه هم تو که لیکن من در من آمند الله و و اقام سرابعات از زکار تمام اون احکامی که در یک آیه دیگه یعنی تمام بی این معنا در جایه دیگه ذکر شده خود اون نظام باید پیاده بشه این تا آبان و علیه بگرد ولا تا آبان و علیه اسم علی عدوان و علیه ادوان و ادوان و گناه و ظلم ادوان من این ظلم چون در مجموعه روایات دو بخش هست یکی فسخ و یکی ظلم و ادالته و اون چی که در باره حضر هست و به اصطلاح ممیزات هست محلی بخش ادالته ها یعنی قیل از انتشار فسخ آن اون فسخ جای خودش یملعه ها و حسن بعد معامله از ظلمن و جهره اونی که از اهداف اصلی هست اون ادالت. نه فقط تسخ و گناه و بی مثلا اطاعت الهی پس این آیه مبارکه در حقیقت محناش به ذهن من یه مقدار بالاتر از امر محروفه تا آوانوال دره و تقوی این و لا تا آوانوال اسمه لعدوان. یه مقدار بالاتر از مثلا در اول آیه خویی در اینجا تو مسئله حزب پروتوزا قلعه ماده فساد بود این بالاتر از کل ماده فساده من تو بحث لازارت در دور صادق توضیح داریم بعض این بحث مطرح کردن که, که لازارت تو مسائل اجتماعی هم تو افکان بلایی هم جاری بشه گفتون جاری میشه مشکل از وهكذاست لكن جامعه رو با لازارت نمیشه اداره کرد خب بفکر ما نمیتونیم جامعه رو منتظر بشین فلان چیز موجب ضرری که جلوش جامعه رو با لازارت نمیشه اداره کرد باید جامعه مثلا الا صحیحن و الا صحیحن و انتومال اعلو اداره کرد نه با لازره منتظر بشینید یک جا, جا نقش پیدا بشه یک جا تنبوز پیدا بشه کاسی پیدا بشه اون کاسی رو دیگه در دست نشوشیم این راه صحیحی نیست برای کار ولی اون لازره قضای اجتماعی میاد اما با اون نمیشه اداره کرد ظاهر الهی مبارک این معناست که به ذهن ما این بالاتر از امر معروفه تا و انا و تقوا بلا تعاون و علی اسم و عضوان ولی به نظر ما همون حرفی که اوائل اهل سنت فهمیدن اله یومنه و فقه قبلی ما فهمیدن تا قبل از این فقه اخیر اخیران صاحب جواهی اینه که همون اعانه برای اسمان حرامه این توضیر گذشت. برقه میکنه بین اعانه و تعاون در این نقطه بله اعانه باید در یک حدی باشه که وقتی نگاه میشه صدق تعاون هم برش بکنه ولذا مقدمات بعیده در آنه داخل نمیشه یک جوری باید بشه و این نگاه خب خواهی نخواهی فرق میکنه مثلا به حکومت یک جوره به آمه مردم یک جوره به سطح دانشگاه یک جوره به رسانه مثلا یک جوری دیگری این ظهور و بروزش فرق میکنه و الا اصل مطلب یکی اون وقت این نتیجهی که مخواد گرفته بشه اینه که ما این مطلب رو این جور به فهمیم این کتب زلالی رو که آن گفتن افضل کتب زلال حرامه این رو بیه من این مقدمه را ارز کردم از دو منزار نگاه بکنید این مقدمه را ارز کنی نتیجه یک منزار پردی یک منزار اجتماعی که از کلی در مقنعه شیخ مفید و نهایی شیخ پیشی این از منزار پردی آمده از زاویه پردی آمده از دید پردی آمده بخشایم که آی خویی و دیگران فرمودن تمام از همین فردی فردیه البته حالا مثلا قلع بابدی قصاص شده اجتماعی هم باشه به لحاظ فردی ما باید دنبال بیشتر عناوین انسانی یعنی به عبارت دیگر اندر تحقیق محال نتیجه گیری بکنیم ان شاء الله تعالی از نظر فردی اگر در لسان دلیل این عنوان نیامد باید از مجموعه عدل این حکم رو در بیاریم ها شرم کنه زدان از که این مروم شیخ هم فرم متفدیه کاملا متوجه این مطلبه برای اثبات اینوه به اطلاق معقد اجماع تمثل کرده حالا شما مثلا این آیدی بود منابشه این ای که اطلاق نداره محصه دیگه اید. تمثل شیخ به اطلاق چرا چون دلیل لحظی نداره خب اینم واضحه به نظر ما تمثل که به معقد اجماع و مخصوصا پیش ماها که این اجماع و ایشهاش واضحه. یادت ابهام داره. آیان دیشتر به اجماع ما راجعندهن با خاطر تعبود. گفتم شماره واقعی امام کوب. خب تعبود یک زبایا مجهول، یک زبایی تاریک. من دیزرا متصل به تعبود ما راجعندهن خانم شما یه تاریک نداره. دعای نداری به زبایی تاریک مراجعه راجع اکنون. یه مثاره فرشی ابدی احکام می‌رسید با زورگاری مثل آن شیخ فوسی و محسن دروانعندی که شیخ موفقه گفته شده، در از ها این و قبول شده مثلا از زمان از قرن پنجم که مثلا شده تا قرن هشتم هستوم تلقیه و قبول شده علامه آمده ادایه اجماع کرده درستان هم این فتری زمانی اجماعه لیکن این مطلب یا اصلا سابقه در روایت نداره صرف تفریه صرفه یا اگرم سابقه داره ممکنه اون روایت خدشه سندی داشته باشه دلالی ما به نظر ما سابقهش همین روایت تا اول که الان برای ما به لحاظ حجیت مشکل داره هر دو خوبی هر دو کران ذوقن خوبه من با شما بپرن اما ذوق چیز دستو با استدلال فقهی و حجت فقهی مطلب دیگری و, و لذا به نظر ما این سلسله اشماعات یک زوایای تاریکی ندارن که بر ما حجیت برسونه اینا ریشه هاش اصلش اصولش فروش، تمام واضحه و روشن اون نکاتی رو که خواه های بعدی اضافه کردم، مثل آیمون الناس و نیشتهی لحوال حدیث یوظل بیه انصبیل الله یه حق خوبی کتب زلال که یوظل بیه انصبیل الله بعد از این بره کلو خوب اما اینکه حالا این چه مقدارش با نصف نصبه یوظل بیه این مقدارها رو ابهام داره چون ابهام داره ما باید برگردیم به همون قواعد عامه، ما اگر این مسئله رو در زاویه ترگی نگاه بکنیم باید تناه ببریم اجمالاً به بحث مقدمه حرام و اگر از ظاویه ترگی نگاه بکنیم و خطه دولتی و نشر کتبی که و انتشار کتبی که اونجه به جامعه میشه یا فرصیم اصلا خوره روتی واسه فرصی انگلستان ای گرفتن ها حالا این سابقان های معروف لندن چه کار اینو بخشای فرهنگیست این باید دولت تصمیم بگیره این چیزی نیست که مثلا نظام اسلامی باید تصمیم بگیره در تصمیم نظام اسلامی مسئله مسئله تعاون به روط تقوا و عدم تاوانه اسم العدوانه چون که برای خود نظام نیست اون میخواد برای جامعه نگاه بکنه لذا به نظر ما مسئله حفظ کتب زلال در معیار ترویشت از راه مقدمه یه حرام باید شد یا به قول حضرات اهل سنن صد زرایع به اصطلاف زرایع بازال صد, صد زرایع و اما در معیار حکومتی و نظ... که مرحوم شیخ هم در محسود اون چرا که نمکرده معیار حکومتی است البته فقط اونجا حفظ مقرح نیست چون اونجا این بحث دیگری ای هم هست اون تو بحث قنائمه عاصی اینه که کتب زلال تقسیم بشه بین جنگنده ها یا نه اونجا یه نکته دیگه هم داره اونجا اون زاویه بحث ناظر فقط به حفظ کتب زلال نیست اونجا ناظر به تقسیم هم هست جزء غنایم این معلومه شیخ عبدالسلام هم گفت معلومه شیخ ها دیگه دو تا ابااضی یکی دیگه اونجا نکته یان بر غیر از حفظ کتب زلال چون اون بحث غنایم اینه که راست جایی رو گرفتن کتاب‌های اونجا بود. چه کارو کنیم با کتاب ها؟ این چه کار بکنی میگیش اینه که آیه بین اون اونها تقسیم بش یا نه مشوره بین فقها چه سنّی ششیه اموال غیر خیل... اموال مرحوم تقسیم میشه خب قرار بوده اموال مرحوم باشه فرض شد اموال اونجا یه زاوی دیگری بحث هست نه با با مانع میشه بشه لذا به ذهن ما اینطور میاد انشاء به قضیه این عنوان به نفس ثابت نیست برای این عنوان ما باید دنبال دو تا عنوان باشیم یکی به لحاظ فردی مقدمه حرام یکی به اجتماعی و لحاظ نظام سیاسی تعاون هر... یعنی کتاب‌هایی که نشونها اونها موجب تعاون بر اسم یعنی تعاون یعنی دولت یک قدمی رو بر داره نظام یک قدمی رو برمیداره داره برای اینکه این اسم این پخش بشه این گناه پخش بشه این مراد اینه یک قدم رو هم ممکن است در 300 ثوری ملی برداشته. یک قدمه رو ممکن روزنامه‌ها بردارن. این دیگه نظام اجتماعیه. ممکن یه روزنامه خودش صاحبش هم خیلی ملتزم و هم باشه، اما مصلحتی رو پس بکنه که اسم اعدوانو در جامعه ترویج بکنه. اون حساب. نه, نه این که خودش انجام بده. لازم نیست خودش انجام بده. اون اون بودن، بفکر روزنامه و کار روزنامه یا فارسی اون شبکه یا محور هرچی کنه. یه لفظ خود اون کار اونه اونی در مجموعه آیات و روایات استفاده میشه اینه ولذا به ذهن ما میاد که این مسئله را از راه تعاونه بر اسم و از از نزاع اجتماعیش و بلاحاظ مقدمه حرامم بلاحاظ فردیش حلبش. مسئله معروف دیگری که اینجا مفرح شد تعاونه مطرح شده که مراد از چیه؟ مراد باطل فی نفسه؟ مراد حرفای نامرغوت مراد مثلا صوره هست حزمان حرفای زشته انصاف ازیه و ها کذا بحث دیگری که میشه بهش اضافه کرد کتب مراد از کتب چیه شامل روزنامه میشه شامل مثلا بروشور رو نذر برقه و ها میشه یا نه کتاب باشه و بحث سوم که مراد از حرز چیه نگهداری یا حسبه زهرا الخير قلب اونم جز حفظه اینا رو بحث کردن که عباد شیخ خوندیم ما در اینجا ارز کنم به حضور مبارکتون من اول قاعدش ارز کنم بعدم نتیجه گیریش اما قاعدش وقتی که یک اختلافی در موضوع میشه اصلا دلوک شمس اقلی سراد دلوک شمس دلوک چیه؟ چون بعضی ها با قول مرمون و نقاطی شدن معیار دلوک رو مداره به اصطلاف اون چیز میدونن نصف داره نه ها هر دایره ای که از بالای سر شما رد بشه که از خود زمین رد بشه این اثر داره این اسوناار میاد خب این بالای سر قابل تصور نسبت به خورشید این طوره طلوع خورشید به خروج به دیدن اولین جز خورشید از در یک صحرای هستی شما افق حسی نه افق واقعی افق حسی رو کاملا میبینید حالا کوه و گونه اونها جلویش کاملا شما افق حسی رو صاف میبینید بعد با دیدن اولین این جزء از خورشید طول و خورشید صدا میکنه منتظر نشین تا آخر طلوع تا اخر اجزاء همون جزء اول که دیده شد طلوع خورشید صدا میکنه در غروب به شه با پنهان شدن جزء اول غروب صدا نمیکنه آخرین جزءش واسه غروب بکنه در غروب خورشید که نصفه نماز مغرب بخونید وقت غروب اون وقتی که آخرین جزء خورشید جرم خورشید در دایره افق حسی شما یا افق واقعی شما چون احطلاف دارم با هم یا در دایره افق واقعی آخرین به اصطلاح فرصی چند ثانیه بین اینها فصل آخرین قسمت جرم خورشید قائب بشه این اصطلاح هم میگیم غروب پس در سلو اون طوره در غروب این طوره حالا یه بحث که هم, هم که بیکار میشه بحثای اینطوری هم میکنه یه بحث که زوال چیه چون شما اگه یه دائره وهمی از سراتون فرض بکنید آیا جز اول خورشید از این دائره رفت بشه؟ این زواله؟ یا نه نسه خرشیر از اون رفت بشه؟ این زواله؟ یا آخرین جزش رفت بشه؟ مثلا برو در, د... در دائره زوال همین که اول روشن شد فرض نهید کمی میکنی تعظیم وقتی حالا بیکارشون هست که پروز عجیبه ارپی نیست بست اما خب قابل... چند ثانیه داره آیا اون زوال خورشید با رد شدن جرم خورشید از دایره وهمی نسب و نهار شما تا الان تشریف بردید دقیقاً؟ یعنی یه برنامه کامپیوتر که خیلی دقیقاً تشخیص می‌ده. آیا جرم اول خورشید رد بشه یا در نسب و نهار نیمه خورشید رو حساب بکنید، نه اول نه آخر. یا نه اصلا اونجا مثل غروب آخری بخش خورشید رو حساب کنید، آخرین جزء خورشید رو اون شما اگر بحث کنیم در دروک این بحث جا داره و میشه به عرض کرد حالا خیلی از این که خلافی در مفهوم یک در مفهوم دروک که کای دروک کنی زوال یا غروب بعضی احتمال داره که مراد غروب باشه اصلا زوال نباشه یه احتمال را احتمالیا شناخت زواله حقیقت زوال چیه ما راه فقهی مون که سعی این موضوع شناخته بشه اگر شناخته شد به شناخته نشه طبق مباحثی که دارن نو احتیاج میکنن یا به یک معمعی استفاد می که چه چیزی قاله استفاد روش مفهومی است. به استفاد می کنن یا احتیاج بهش برعجله میشه، بحثه خاص خودشه. ما در سر طبیعتمون اینطوره اول موضوع تنبیه میشه، طبق تنبیه موضوع حکم رو میان بررسی میکنن. اما اگر کردن چرایی سببالم هم ازش زیاد نرسیده، چند بار ارج کردیم قالی اوقات در بحث از مسائل اینطور نیست. ما این راه رو اول حکم رو نینیم بعد موضوع رو می کنیم متعارف همونه که اول موضوع رو می بینیم بعد حکم رو بار می کنیم شد می این متعارف به ماست اگه گفت اقسل به ماه اول می بینیم ما چیه می بینیم قفل چیه حقیقت قصد چیه مثلا دقیقا اون رو می گیم اقسل ها نیجاد قصر. اما ما در بعض از به عکسه حکم رو که دیدیم موضوع رو از راه حکم رسکیت میدیم این، اینم ما این مادرته این مریارش کجاست این معیارش اینجاست که اون موضوع تو لسان دلیل نیامده ما اجمالاً فهمیدیم اگر موضوع در لسان دلیل لفظی نیاد خواهی نخواهید برای تحدیدش دنبال حکم میدیم می نگو چون حفظ کتب زلال در لسان دلیل نیامده نه در تشریف کلمه هفظ و نه کتب و نه زلال هیچ کدوم به فهم عرفی بر نمیگردی بله اگر اطلاق معقده اجماع که شیخ فرمودن درست باشه درسته بر میگردیم چون باز بیریم زلال یعنی چی کتاب یعنی چی حفظ یعنی چی اما ما از کردیم ما در اینجا برگشتیم به یوهل بی همی الله ما دنبال عنوان حفظ و کتاب و زلالی نیستیم یا تاوان و عرض بردر از سفر حالا تاو ممکن که عنوان بر اسم عنوان به فیلم باشه به فارسی مثلا به این های کامپیوتری باشه به این سی باشه به ورقه باشه به آگهی باشه به این چیزایی هر چند چیزی که آمازون میتونه تو خیابونا هزار راههای بسیار مختلفی باشه ما دنبال عنوان حفظ نیستیم دنبال عنوان کتاب هم نیستیم دنبال عنوان زلال هم نیستیم تا حقیقتش این عنوان چیه <تصحیح> چرا ما دنبال عنوان مقدمه حرام یا تعاون بر اسم عدوانی روشن شد این یک راه کلیز. هر جا که یک باون... مثلا در بحث تشریف یا مهند هر چیزی، حاضرن گفتن تشبیہ حرام تشبیہ اگر در روایت نیامده مثلا گفتن تشبیہ از باب اشای پرشا مثلا این الذين يهبون ان تشي الباجه پس از اشای بود، نبودن رو تشبیہ نیست. فقط این یه راه که از باشه ما اصولا اولا باید تنقیه موضوع بکنیم اما تنقیه موضوع در جایی است که این اون در لسان دلیل شده اما اگر تو لسان دلیل احض نشده بود ما به اصطلاح استیاد کردیم نه از اطراف مختلف جمع کردیم لیوغن لبیه انسویلالا لاتا آبانا اسم الان مجموعه اون وقت دنبال عنوان زلال و دنبال عنوان کتاب و دنبال عنوان حبز نیستیم ما به دنبال عناوین اون عناوین دیگری هستیم که در مقام هست این هم راجیه به تنقیح موضوع پس این بحث که کتاب باز ورق بشه اختلاف داشته باشه نشه این بحثا نمیخواد ما چون دنبال این بحث میشیم دنبال اون عنوان دیگری هستیم که اشاره شد بحث دیگری که اگر کتابی تشریف داده شد که واقعاً این که حالا ظاهراً جزء کتب ظلال بله بحثم تمام اگر کتابی جزء کتب ظلال بود و ما غیر از حالا و حب خروختی آیا به ملکیت اون ضربه میزنه یا نمیزنه رفت ملکیت اونی که الان متعارفه متعارف در اناوین فقهی و اصولی ما اینه که اگر اون عنوانی که نه از اون واقع شده رفتی به عنوان بیع نداشته باشه مثلا به با اون رفت اون تأثیر نداره اما یه رفتی به عنوان بیعی داره نمیشه یعنی باید عنوان بیعی رو نگاه کرد مثلا اگر عنوان عنوان ازلاله این رفتی به ورق و به کاغذ و به ها نداره که چون رفتی به این قسمان نداره اگر کتاب زلال رو فروغ این طبقه قاعدهی ای که انا هست کردید بیعی درسته یعنی به عبارت اخرا، این بنس و اهل سنت رو در واقع که آیا کتب زلال بودن مالیه یا نه؟ اونا اینطور طور نتیجه گیری کردن اون مسئله که گفتن یک مسئله اولی بود حالا این مسئله نهایی ما بیاییم فرق قائل بشیم بگیم اگر که یک چیزی آمد تأثیر گذاشت روی مالیت شی، و اون عنوانی که تأثیر گذاشت اون عنوان خودش محرمه خودش غیر جائزه. بیاییم اینطور طور قائل بشیم به اون مقدار که بعض عنوان مالیت میاد اون سازه اون مقدار از مالیتی که تابع عنوان نیست اون مثل این که درست مثل اینکه با طلای طلید درست بکنن یا یک مجسمه بسیار زیبایی نهاد هندیا هستن که مجسمه‌ای که خیلی از طلای اون با طلای یک مجسمه بسیار زیبای درست کردن که تلاش تقریباً صد گرمه. حالا تلاش تقریباً چند گرمه مثلا 50 گرم. فرض قیمت مثل تلاش مثلا میشه فرضتون 5 میلیون تومان. اما به خاطر اون شکل هنری و, و مقدس و میشه مثلا این که از عدیانی که در کشارهای دیگه هست در ایران از جایی دیگه هست به خاطر رو هم 10 ملیون تومن بشه اضافه شده پس به خاطر ماده قیمتش 5 میلیون تومن تلایی که داره به خاطر حیعت شده 15 ملیون تومن شد؟ یه قایده دیگه ریخته این قایده رو از اکرول و ما هم داریم بیاییم بگیم اون مقدار مالیات به ازای هیئت باطل اون ملغا اون مقدار مالیات به ازای ماده اون سابه اینه که مرحوم شیخ سوسی نوشته که اگر کتاب قابل این هست که با آب بشورن با آب بشورن و اون ورق نگه رو دارن. این اشاره به همین عنوانه روشن شد مطلب؟ یعنی اگر کتاب به خاطر این کتاب بودنش یک کتاب در کفریاده به خاطر کتاب بودنش دیمه دشت بخواهد حالا به مجارسیم تصمیم بکنند. اما اگر اون نوشتار رو پاک بکن گذیم نوشید به همین ها این که گفته پاک بکنید و ورقش حساب بکنید این بحثید که در حیاته عبادت هم گذرد بنای فوقها الان بر اینه حرف هم نیستن ساتن ما بیاییم منشه امالیت رو تفتیق قائل بشیم اگر منشه امالیت روی حیعتید که هیئت فاصده حیعت باطله هیئت حرامه اون مالیات هم ملغا اما اگر منشه مالیت به اضای ماده است، اون ماده حرامی اون مالیات چرا ملقا بشه فرسونی مثلا میگی و ازام بعضی گفتن اگر فرسون سلیبی بود یا بوتی بود خواستین بهتون چی اونو بشکنین برنان تلابت بشی بعضی هم گفتن نمیخواد بشکنین اصلا برنان تلابت بشی باید گفتن عدم قصد کافیه انصافا خب اصل مطلب سوشن حالا اون مقام امت... احراز و مقام از امت... مقام در خارج ممکنه که با اشکال رو بزشه چون که شمال به باطل اون مقداری که مول واسه اون بحث دیگری اون تبعض و تفاقش رو قبول نداریم اون بحث تبعض از تفاقش اگر به به هر دو واقع شود به باطل میذنه ما یه احتمال میگن اون مقداری که به اضای حیرت درست باطل اونی که به اضای ماده است درست باشند اون تابع بحث دیگری نام اوزه سبق، سببه پس بنابراین خوب در نظر بگیریم هر اینه که اگر کتاب زلال بخواد فروش بره اگر فروخت و گفتیم به خاطر کتاب بودنش این برمالیتش اضافه شده ما هو از ظاهر دیگه به خاطر مالیت، مالیتش به خاطر این به باطله فقط مقداری از مال به ازاء به حساب باطل قرار میگیره و تبع از تصرفه من اکثرشان تبع از تصرفه اولا و طبق قاعده باطله مگر در مورد دلیل بیار همونجا قبول میکنید من اگه گفتم این خانه رو میخوان بفروشن به 200 میلیون من این که هر دونه آجر اینقدر هر دونه محتاوی اینقدر سیوا اینقدر این تبع از سفره خلاف قاعده است بر اجزا یا بر شروط یا بر اوطا سه جور تبع از داریم. برای اجزا و بر شبوت و بر اوصاح تمام اینا حلال ازاهده و لذان فوقها ملتزم شدن که اگر وقتی از بین ره اون بی باطله مگر اینکه که صحت باشه چون اونجا طبقه صفقه قبول که خیار احتیاره طبقه در وصف سهت پس تفسیرش یعنی یک مقدار از بی درست مقدار این مقید درست مقدار سالمش غیر درست شما ما حق خیار دارید تفسیر قانونیشینه. پس بنابراین این به لحاظ مادیات حقیقی است اون مقداری که مالیت خودش محفوظ محفوظه اما اگر به لحاظ زلال بخواد مثلا به لحاظ باطل ارزش ای پیدا بکنه که قائله من همینطوره این خب کتاب از جذبله برقش حساب نمی کنه اون درست نیست مالیت اون درست نیست و بیع کلی بین کتاب کلا نه کلی کلا در مورد جزء به کل کتاباق هم م نیست بر تبعض تخرایی به نظر ما خلاف قالال است و اون به کلن باطله. پس خرید و فروش خود به ذلا هم ولو خرید و اون خرید فروش و خود اورا ها کتابار پاره کرد اورا فروکنن برای بازی ها. اون شال نداره چون به خود قرقازهعنی ور می کرده گفت مثلن چند کیلو وبر داریمیم پس اون پاره را اضافه بر اینکه ورز می کرده به ورق. آیا پاره کردنش هم لازم اون بحث دیگه اون بحث اجرایی به اصلاح ما اون بحث مقام اجرااز اون بحث خارجی از ما نعنفیه. پس در نابعه این بحث آخری هم انشاءالله روشن شد و اون که قائل بشیم اون مقداری که به اضاع کتابت اون مالیتش ملغات اصلا اون مقداری که به اضاع ورق ماده مثل بس تلایی مثل صلیب تلایی اون مقداری یک صلیب بسیار ذریع خیلی, خیلی زحمتی شده شاید دو برابر قیمت طلا به خاطر اون حیعت گرفتن خب اون باسه ده. اونا را که به خوشو باسه تو اونجا تواز باطله به دقت دارید؟ پس بنابر این به لحاظ حکم ورنی هم ان حکمش روشن شد. ما این امروز وارد حلقه لهیه میشیم که فرض ان شاء الله باز بحث حلقه لهیه میشیم ابتدان کلمات مرحوم بعدا تعقیب مسئله رسول الله علیه و آله